بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الله على محمد على اشکالی بود که در خودجیت خبر واقع به اصطلاح در اخبار مرد و در در این اشکال اخبار مرد نظرشون این بود که ادله خودجیت علی تقدیر تمامیتش شامل اون روایاتی که الان وجود داره پیش ما نمیشه اون در وقتی که در میان علماء وجود دارد. بر فضل ما حجیت خبر را قبول بکنیم یعنی آیه نبر مثلا مثال، ما بر هم که آیه نبر را قبول بکنیم این ناظره به فقط باش اثبات میشه که خبر بلا خبر مهن رو که الان در کتاب حدیث اهل سنت و وجود داره این شامل نمیشه برزا این استطلاع خام نیست شد که این مطلب در کتاب مرمون شیخ آمده و از زمان مرمون شیخ در حوزه های ما معروف شده این اشار اخبار مهن در باب زید آیه نگر بکن بعضی ها مطلب احتیاج و به آیه نبر ندارد همون این اشتال به دو صورت تقریب شده که مرموم اصداد هر دو صورتش رو جواب دادن هر صورتی رو یک نه جواب دادن مرموم اصداد پر الله یک مجبور مربوط میشه به صدر خبر یک صورتش به زیر خبر به اول اسناد به اصلاح یک صورت اشغال به آخر اسناد اما به اسناد اصناد چون یکی شما میگید موضوع آیه نبر اینست که در دیگه اینست که نبر آده یوسف درد ما اگر سندی داشته باشیم که مثلا کلینی از علیه ابراهیم از حبیر هنه نوفر یعنی سکومی خب خبر کلینی که یه هندسانی علی ابن ابراهیم این نبعه از بهتش در اما قول علی ابن ابراهیم باید به حکم ثابت بشه به یو سده بشه و حکم نمیتونه موضوع این خلاصه اشکال به تقریب مرور پرستاد رئیشون جاق اولا چطور اقرار و اقرار میشه اینجا هم همینطور. مرادشون از اقرار در اقرار اینه که مثلا من الان بگم من اقرار میکنم که دیشب اقرار کردم این کتاب ملک ملیزه الان اقرار به مالکیت نمیکنم اقرار به اقرار دیشب میکنم که بله من دیشب اقرار کردم این کتاب ملیزه پس چطور اقرار به قول على جائز اقرار فعلی من رو میگیره من الان اقرار میکنم لکن به اقرار فعلی من اقرار دیشب ثابته میشه یعنی به خود اقرار و حالا الانفرس این جائز ثابت میشه که دیشب اقرار محتر شده به اقرار به اقرار موضوع درست میشه ولی که هم برینه بر, یه بر, بر یه که مثلا اگه دو نفر شهادت بدن بیان ما در این حادثه نبودیم اما ما دو نفر شنیم که دو نفر عادل این که رو بزن بر بر که مثلا در بران باقعه مثلا قبلیه که واقع شده این بوده چطور بینه بر بینه قبول میشه هم همینطور و جواب دوم استاد جواب حلی بود و اون مسئله اینحلال بود و خلاصه این بود که باز حدقه عادل در کلینی نبه حلی مرآین سان بزنیش این اشکال نداره چون رو گویه کنیز منحن بوشه به از این این اشکال اول و جوابش به تنبیر استاد و ایشکال دوباری روزه هست از نایی آخر سنده اون این که تعبد به لحاظ ها در اثر شرعی باشه اثر شرعی در کلام زورابه هست که میگه قال اصلا است. اما در کلام کدومی که اثر شرعی نیست اون حدیث کرده و بشتر نکرده چه اثر شرعی داره بعد مرموم اصلاح جابدن که روی مرنای ما که تکیم کشفه این اشکال واضح نیست اما روی مبنای مشهور که جلح حکم دونن و در باقی خبر جلح حکم دونن اشتای میاد و شهار جواب هم فرمون در از فرمو این مطلبی که در اینجا هست و این مبنا طبعا این جواب ها فرضیه یعنی روی اول مبناست این مطلب با. این خلاصه یه بحثی بود که دو سه روزه ممتحدش ارض کردم یه روز که این مطلبی رو که استاد فرمودن. راجب این که علا مبنه میاد نمیاد این مقلب درسته اصل این مطلب همینه اصولا ریشه اشکال, در اشکال اخبار و واسطه و این که آیه نبر شامل اونها نمیشه همینه یعنی این مبانی مختلفه مرمو استاد مبنه خبر اولا دیروز من توضیح دادم، باید ببینیم مبنای اینها در تصویر هجیت خبر چیه؟ چون خبر و حسب ظاهر طریب صرفه اصولا حجیت در طریب صرف تصویر میشه نمیشه چون که طریب صرفه چون تابع واقعه میشه یا وقال برزه هایون تابعه میشه اونی که شنش طریبیت صرفه تابعه مقصود داره مقصود هست یا نیست چطور جل حجیت در طریب میشه. این یک صحبت یک صحبت کلی ثانیه دلیل ما بر حجید چیه؟ صرفه مطلب اینجا برمیگرد مرمونهای کویی تصویرشون از خود در مثل اینه که طریق صرفه طبعاً در نایین مرموم و با شیخ هم ساییان دیگه همه مشروع شاییم بگیم قاعد باشیم طبعاً اعتقادشون اینه که تهمشون نه این دو سنفر در کفای تحضیل و سنجید همون برابر مشهور خود شیخ هم نظرش این نیست نظرش مثل از لکن اصل مطلب اصل حجیت تصویر حجیت اصل به اصطلاح نتیجه حجیتی که بخواهد بگرد خلاصش اینه که ولو نظرش محسن سلوکیس محوم و سال ممنونه این آزیا نظرشون به تقیم کشف حجیت حقیقتش چون کاشف یه جذر یه کشف ناقص داره شعر تقیمش میکنه و رضا و از کردیم نقطه اساسی تر در کلمات این ها که در کلمات مثلا بعضیشون واضح کامده بعضیشون نه نقطه اصاسیه که حجیت رو جاره مدار کشف میگونه اصلا نقطه اینه حجیت اینه کاشفیه مهر کاشف تام بود حجت تام بود کاشف ناقص بود حجت ناقص اصلا کاشف نبود شک بود اصلا کاشفیت حجیت نبود لذا مرغوبینای قدس الله و تنزه می‌فرماد که من بو مسا اونجیه که اد ا که اون کاشف تامونه اون که خودی خودجاست جعلم اونجا تصویر نمیشه میتونه شارل دینای من قرار دادن نفیارد نمی‌کنه حوجا قرار که حوجا ناقص کاشفش ناقصه میتونه شارل تکمیل بدن چون بالاخره کاشفیت داره هفتاد درصد داره میتونه شارل بیمه این قابل جعل البته ایشون از پر تربیر من به وجهیت منجله باید این منجله خود شده قابل جهر نیست و اما در باب شک قابل جعل به نیست چون صرف جهر یعنی جهر این چونیستی شکش روش نداره سآل میکنم مثلا فرانجی میره نمیگونم نمیگونم ایشی میشه تام تامش بکنه در حقیقت باید ابداع بکنه کاشفیت رو ایجاد بکنه وقتی. صرفه, صرفه. آد ایجاد میکنه، ایجاد کاشی بیات که معمول نداره. ولی سه قسم و ایشون هم تخصیص سراسی که معمول شد دارن ات از دن اینطوری باشه. دریله هدیه هم کیشه معموم نه و دیگران. مثلا این نبالت این نبالت شوند سردار. مثلا آه از آه هدیه ممبالی نه فکرشی تمامای پی ما یاری هم نسرات. نشون میگه وای آب در این حجیت بیشه مرموم اصطاق سیری اوحالاست که سیری اوحالا خبر سیره حجیت نبیه این معنا اگر ما اسمیان پیدا کردیم به صحت خبر وصابت راوی متممه وصابت راوی اون کاشف ناقص رو تمام میکنه خود وصابت راوی روشن شد اون وصابت راوی میاد اون کشف رو تمام میکنه. این تصور مرمون اصلاف برده بهم. خب این یک مبنا یک مبنای در حجیت همونی که از روایات در میاد و مثلا که از آیه نبر پس قبنا اینه که سی او اقلاق شاره سی رو کرد یک مبنای که از قوایات یا آیه در میاد و شاره هم امضا کرده، و امضای شاره به همون تصور و در حجیته به آفکانه یعنی یعنی شاره امضا کرده از قبل تصمیم کش نه تو حجیت کسر آفکانه حجیت که او عادا تصمیم کشه هم وقتی با هجیت این تصمیم کش دوستان شد شما گویی این تابض رو جمع میکنه با فهم آو این دو تا معنا معنی ثبت هم کسی که من نه و جیت شرعی معنی خاصی خیلی از اون میدیدی که اغلاف هست حالا کسی که شما باشه و اون عبارت از این که میخواد بیگه این خبر حکم هست بلکه از دید مثل ابن هست میگه مارواه و سرعتون رسول الله این نهمه از در نزد شامل شده میشه حکم درست میشه یا حکم واقعی یا حکم زادری تقرده می اون چیه که محتضله اشکال کردن اون که اشاره حاله حاله به که دنبال خبر دادن. این مسلک سوم بود اشتباه نشه اینا میبنید جهر حکم میشه طبق همه خبر یکی از اشکالات طرف مقابل این بود که جهر حکم رو با واسطه واده میشه تصویر بکنیم با تعدل و ساید نمیشه تصیر کنیم اصلا اشکال به اول تصویر بکنیم میگه شد. پس اینا آن خوشی نه اشکال باید خویی هسته نه باید خویی هست نیست باید نایمی هم نیست اشترف اشتار بودن روشن شد برسون طرف اشتار اون خط متعارف اهل سندن که در باب حجیت خبر قائل بودن جعل بوقه میشه در طبق خبر یا حکم واقعی یا لاقل حکم ظالمی اینا بخواستن بگن اگر معنای حجیت این باشه که جعل بوقه میشه و آیه نبه میگه نبه عادل طبقه نبه عادل جهرهو که میشه خوده پس بکنیم اگر این باشه این به درد جایی میخونی که شما با یک واسطه از رسولانه نبه بکنیم بسا عبدالله نبه بازه از رسولانه این قبول اما اگر سه تا واسه خود چه خو، دیگه شما نمیتونیم که جیده اینجا تصیب بکنیم چرا؟ چون حجیت احایت از این است که بیا چاره بگه من تبقیه این کلام جعل و بخیم کردن خب دقیق میکنیم تبقیه این کلام کلامی کلام ترسوی مثلا اون با کلیدی داره هده سانی علی بن ابراهیم شاره چی جعلی تبقیه این کلام می‌کنه؟ الان خبر علی بن ابراهیم نه به اون رجدانی نه به آقادر شاره تبقیه از کده چی بگه؟ <متصف> گفت هده سانی علی بن ابراهیم. این مقدارش اینه دیگه بعد پر از باقید به کلام حجته یعنی علی ابن ابرایی بهشون گفت که اثار نداره این چه پایی پس بنابراین اشعار در حقیقت در اون محیطی بوده که اهل سنت بودن و در خبر قائل به جعل بودن حالا یا واقعی واقعی مثل ابن هست یا ظاهری لاقل مثل لعل من اده زیادشون تونه از کلم بحث که در تصویر بیشتر مطرح کردن کردم تونه اشاره اشتار تقلیل این را ارجاع به اشاره تقلیل در عباراتشون پس مناول این خوب دقیق بذارم اینا صحبتشون اینه وقتی حریز به شما میگه حد دستنی زراره. این چه اثر شدی داره فکرش اثرش اینه که کلام و ثابت بشه این اثر اینه. مانع حجیت خود جیت سوگوت کعبودی یک چیز نیست که کافی کنه. یه تفسیرش نیست. مانع از خود جیت ولو بگه پولی زور از خود جیت ولو بگه نباید عادل جیت. خوب. ولو بگه نباید عادل بجته مفاد واقعیش این است که تبرون نباید جعل بگیرد. این مفاد واقعیشه تصویر حجیت اینه جیتیه. تصویرش. اگر این مطلب رو شنیدی. وضع معلوم میشه که در اخبار معروطه در هر دو طرفش اشکال داره نه در یک طرفش در طرف بالا که علی بن ابراهیم خوب کلام کلنی حدثنی علی بن ابراهیم نبع عادی خب این چه اثر داره اما خوبی میفهمم اثرش اینی که کلام علی بن ثابت میشه پس صحه گفت حدثنی عبی اونم میشه منسوب نبع عادی اشتباه تصوّب اینجا است تصوّب توجه نه اونا فرنزشون اینه که با نبر آدم هو که ثابت میشه نه موضوع به برد میکنی آقای اینجا با قول علی علم کلی این ثابت شد علی علم که حدث نید ثابت شد این ترجیح از مردم استاد این ذهنیت خود استاده این ذهنیت خود ایشان چون حجیت و اقلالی میدونه راست از اون حجیت و اقلالی همیتونه چون در حجیت اغلایی سبوت مطلب تهب کار نداره حکم باشه یا نباشه اصلا کار به حکم نداره شما در سری اغلا میگرفتان پرانجا در حرم باز بکنه سبوت میشه در حرم اصلا سخه بود یکی میگه مثلا جنازه پلانی میگوردن یکی بکنه پلانی در, در دخواه نشون اون خبر سخه اغلایی انواع مختلف داره پس این که کلی می گفت حدثنی علی بن ابراهیم اشکال اینه که این حدثنی علی بن ابراهیم واش خبر ثابت نمیشه. آرو خویی مقتول عن گرفت که با حدثنی علی بن ابراهیم نبع عادل نبع ثابت تعبد ثابت میشه. اوکیه تو اشکاله. اونها هر چشونه علیه. همین مطلبی که تو آره جواب دادی از اصل اشکاله. یعنی با کلام کُلَیلی حدثنی علی بن سابق نمیشه نوار عادل برای شبر حدیب نبراین که بگه هده سنه حدیب چرا؟ چون بگن اصلا هجیت بای نوار جایی رو میگه که هکی بیا تو شاره رو بکن میکرده اگر شما بوسوخ ندارین اسمینان ندارین شاره میگه اسمینان پیدا کن یعنی در محدوده شاره طبیعتا اینطور دیگه شما ترسیم توی... توی ایران قانون میگه به پنان چیزه به قول پولیس اعتماع س تو قانون کشیدیگه نیست. یعنی به قول پلیس اعتماد بی در محدودیه قانون این کشته است. تغییرت نمیکنه. در قول پلیس اعتماد کنه. اگر پلیس آن مثلا این دعوی برای شما موفقی، این رفته به قول پلیس اعتماد کرد نگذره. در محدودیه قانون خودشه. چیزی که طبیعتا نمیسوزه آمر نیست. بزماند میاره، بزماند میاره. شاره ای و مقننه بخواد خود دور دلایس بارب به طور طبیعی به سلاح. اسطلاح علمی حسولی ما یک نوع قرینه ارتکازی و قرینه سیاقی هست این قرینه سیاقی سی لفظی نیست این قرینه سیاقی چیه وقتی میگه به این اعتماد بکنی این در محضوعی کار من این توش هست نمیخواد لفظ بگه اگر بما شد که خبر واضح حسول علم نیاره شعر آقا گفت ما قبول بکنی این در محضوعی من دیگه؟ مثل که بگه شما باید این کشورتین به قول پلیس اعتماد کنین یعنی در محضی قانون من در کشورت اگه به قول پولیس نمیگه اعتماد کنین در محضی قانون من طبیعتش این دیگه اما اگر پلیس همان گفت برای من خونه فلان پولا می زنیش مورد کنین این به قول پلیس اعتماد کنین رفت به زن موردن نداره که دقیقی کنین این طبیعت کار اشکال مقتدله روشن شد پس مرگو مقصدار اما جواب دادن اشتبه اول ملخرف نشدن که این خودش اشکاله ایشون میگه نبع العادل به قول کلی ثابت میشه اونا حرفشون اینه که از دلیه حجیت خبر اذهاظ شرعی نبع نبع اثبات نمیکنه حکم رو اثبات میکنه اصلا نبع العادل که یکی از موضوعات خارجی است این با آیه نبع اثبات نمیشه ترجمه فرمید مطلب چیه این رو که آیه اوی جواب قرار داره این خوده اصله اشکاله این جواب آیه اوی اصله اشکاله سرش چیه؟ سرش اینه که مطلب اونا نظرشون اینه اگر آیه نبر دلال از یعنی شارع داره میگه خب دقت این تو آیه نیامده شارع میگه من تبل به آدم حکم قرار دادم معنای حجی به قبر اینه آیه اوی اصلا نفر آیه نظر قبول نداریش شارع صاحب ایشون میگه برتر زن در روایات چیزی بیان همون سیره اوغلایی رو امضا کرده و اصولا روایت هم واضحه نیست اون سیره اوغلایی دقیقاً ما سیره اوغلایی خب بعد اگه دقیق سیره اوغلایی راه رو ببین سیره اوغلایی اخبار مرواست هم شامل میشه لاواسان جون میشه شما تو سیره اوغلایی ناظر به حکم میذاره سیره اوغلایی ناظر به ثبوت کارنده هو باشه موضوع باشه محمول باشه هر چی بخواد باشه دقت کنید نوسته چی؟ اون مطلبی رو که محوم استاد قدس الله نفسه به عنوان جواب آوردن و بگن که حل مشکل می‌کنه خیر اون اصل اشکاله نه اینجا جوابه یعنی قبول چون یه بحثه سنی علی ابن ابراهیم ثابت میشه بله قبول اگه سیر اوغلا باشه دو اگر آیه نبر رو قبول بکنیم تفسیر اوغلایی بشه مثلا چون ذهنیت مرحوم نانوی حجیت این تکیه کج بوده مثلا تو ذهن باشه وقت آیه نبر که میگه لا بال عادل حجیت این تکیه اون تو ذهن دقت کردین نه معنای آی کوییش اونا مکتوبه قبول دارن نه معنای نایینو رو قبول دارن این اشتباه شده اشکالی اشکاری که در اینجا پیش اومده بر اثر اختلاف معنا اصلا تغیر به و جواب اونا حرفشون اینه اگر شما بخواید شوری مقدس یه چیزی رو حجت بکنه که چرنش تحریهت باشه، ما بگیم چه بده؟ او جعل بده. تعریفش از این میشه. پس معنای حجیت در ذهن اونها جعل. نه ثبوت، تعبد، جعل. این جعل با چون شوری باشه، تو شرعی بشه. کلام کلینی حتی شن علی بن ابی آی نضر، آینه بر اینو نمیگیره. چرا؟ چون فوق ثابت میشه که علی بن گفت نضر گفت چون خواهی داده؟ چون نفتی داده؟ من؟ آقای م... خودی با... که از جاوش من حیصل مجموع بار میشه کار میمین اولی مجموع اولین نگردن حیصل مجموع ایچی یکی کسی به به راه نمیدونم که با کت خدا کاردن آقای وقتی که اصلا میزید یار این که میگه اولی میگه اولین شامل نمیشه پس بنابراین دقیقه این که مرمون های میجاب داد این که دادن. آنه دیگه توجه نشده به مبانی اون ریزه کاری اون مبانیه دو تا معنی در نظر گرفته بشه یک تصویر ما از حجیت دو نه چرا, چرا از کردم ما در یک از مبانی جنبه موضوعیت دارم مثل قول قاضی اصلا قول قاضی موضوعیت داره چون رفت شلاف میکنون جامعه تصویر حجیت در جایی که موضوعیت داره راحته مشکل نداره تقت قول قاضی حجت مش ولی که اختلاف برداشته بشه نمیشه شورای بیاد بگه مقنن بگه شما اگر طرفین وصول پیدا کریں به قول قاضی اون وقت این حکم نافذه اگر اینو این دستور جامعه به هم نخوردین چون قاضی حکم این من اصول را داره یا قاضی بعدی ذهب اون اینکه من وصول نذارم یا میشه قاضی بعدی باز اجرای یه وصول نذاره اون باز, باز اختلاف هر جا, جا, جا لذا چون یک منصب اجتماعی است و هدفش رفع خصومت بحث خبر واحد اینطور نیست این طور نیز اشتباه شده یک چه سوال به شما بود در حرم بازگی شما بود در حرم بسازید یک قضیه اجتماعی چه مشهد اجتماعی بحث خبر واحد چیزی است که طبیعتش طبیعیات سر لذا از این حرم مثل ابن قبیح متاسفانه جعل و جعل محفوظ نیست در چه که طریق سر بود لذا ان شعر یحیی به دست و یک نهبی در طریقه صرف جعل حجیت و حجیت معنا بکنن در تشریح مرحوم نائینی حجیت در جایی که طریقه صرفه تکیه میکشه حالا به هر واقعی موقع باشه اجازه اون فاصون برن و این بشه بلاغی بشه مهم نیست مبلول حقوقی شینه از نظر قانونی این, این در دانش خارج دروغ میشونه از نظر حقوقی چیزی که شاهرشطریهت صرفه حجیت در اون باید برقرار بشه تکیهش واسه دیگه نذاره که موضوعیت هر گفت ها چه اصلا معنه و حجیتی. پس یک معنی و اما ارز کردیم مشهور اهل سندر همی که شو معروف مرادش معروف اهل سندر معروف اهل سندر جهل و حکم گرفتن میگن وقتی شاره آمده که یه رو طریقی رو گفت حجت واقع هم واقعا که هست خب که شاره؟ پس مراد از حجت یعنی طبق این کلام، من جعل حکم کردم این هم تفسیری. این در این تفسیر بر برای من ما این تفاصیل رو سابقاً ارس و یک مطلب دو دلیل ما چیه اصلا دلیل ما آیه ندا. دلیل ما سیره اهل سنتی که قائل شدن به حجت خبر عدل سیره در قبول نکردن دلیلشون تحبوت بایه است. وقتی تعبد بایه شد جایی این میاد که جهل و حکم باشه جهل حکم نباشه من رو پس اشکال اینه یک اون حکمی که تأثیر داره کلام زراره است که میگه قال از ساده علیه سن. اونی که حریف میگه قال زراره این اصلا داره حال خوشاه اشکال اثرشردی فقط مال همین ضبه مال اول سند خب اول از زن های داره. اینا تغییری به اشکغال کردن نمی که اشکغال اول یک دوریه جو جاده اشغال اون است. خه به اشال یکی شما با گفتن کورهیکی میگه هرد سنی عیر میران چی میخواه انصاب بکنید؟ اثبات بکنی؟ اصاب بکنید بکنی که علییر گف گفت هردرس همینی این شهر خبر میه آیه نبه هم چیزی رسپاته میکنه روشنی شد مدرد پس منابراین روشن شد که اشکالی که آنه محتضل کردن وارد میشه بر اشاره که قائل به جل حکم هستند حتی بعضیشون به جل حکم واقعی کردن هست کردن و انصافن, انصافن. اولا خود مبنافی نفس فاسد و باطله چون چیزی که شمشتری یکه معنا نداره به اون جل حدیه خودش این فاسده و هر зам چنین چیزی بیاد باید حتماً به لحاظ یک نکته موضوعی باشه اولاً خودش این مبنای نفس فاسده که جعل حکم دید یا ظاهری یا واقعی و انصافاً اشعار اشعره معتزله وارده یعنی انصافاً وارده این جوابایی که ما و نایین و شیخ و دیگران دادن انحلال رو نمیخوره این شده جواب در نمیخوره اثر تعلیم <تصفيق> موره آنال این مقاله حداسن ای از اثر داره. بنابراین تو اخبار معاصره و بلاواسطه مفاد حو ثابت می شه. مفاد یعنی هم. معنی که امام صادق فرموده باشه. این اینی که عادل بیاد بگه مفاد نه. این کلام امام صادق. مفاد مذهبی از لغت قرائت. موضوع امرایی همینه نمیگه که اصلا هدف هدف از بحث با شما شد هدف از بحث معامله با حدیث و موانوان در این لفظی این شما می در لفظی قرار رو مفاد می شود در این لفظی اصلا از بحث خارجه کلان از بحث اصلا هستان خدمتون پسانا بر این روشن شد صحیح در مقام اولا مبنای رو که گفتن که جعل حکم باشه خودشی نفس باطله انصافه سالی اگر این طور باشه اشکال اخبار اخوار وارده. این جوابایی که از حال ما دادن اشتباه شده مبنا رو عوض کردن مبنا عوض نشه چرا عوض کردن؟ آه ای خوی مبنای معنای حجیت رو با یکی میگنن در دلیل رو سیره میگیرن راست هم هسته بگونند خوی سیره هم اول شما میگنم آخره هم رو شما میگنم درست هم هسته درست هم هسته مطلبیشون صحیحه او مبنای خودونی صحیحه نیست. ممنوع اهل ص نه نیست؟ مربوم نایی حجیت را همون تشری تطمی میگه از مثل روایات عض اهدمل الموایننا پس تشریک مایدری یعنی هراسسه هااتنا. از اونجا گرفتن و اینته ننگن اینجا لازمه کلامشون اینه که و او در روایات آمده وکه روایات جعل وجیت برای خبر میکنه به مح... به ت اوقلایی ف اوقلایی تط روی مبنینایی هم جاغ واضحه چون آیه نفر میگه نبه آل آدلی و صدر این نبه آل آدلی و صدر یعنی به فهم اغلاهی یعنی ثبوت نبه آل آدلی و صدر یعنی ثبوت خب کلیه میگو حدثم یه این ثابته. اگه ثابت شد حدثم یه عبیان ثابت میشه پس یک تصویر حجیت دو دلیل حجیت این مهم در مطلبه دقت میکنه اما اشکال اون اینه که یک حجیت منه جهل و <تصفيق> نه منه سکی بکرچه دلیل تنبوز شهیست نه سیره یه دلیل آیه میگن این دوستان با هم جمع دوستان به بلا واسه رو و حق هم با اونا هست هم با اونا هست مرمو مستاق سورت مثلا را تو ممنوعی دیگه دفتن بعد با تامل دیگه بقیه اشکال دیگه بر هست و اما, اما اون جوابهای نقضی اقرار بر اقرار و بینه اولا این دو تا محل اشکاله در دو دودو مسلمات فهم نیسته قبول بشه میگن این کافی نیست که من دیشب اقرار کردم که این کتاب مال زیدان مال راوندی شده دراکن چه اما اون خودش محل اشکاله دیشب اقرار کرده که این کتاب مال زیده اون اولا خودش محل اشکاله ثانيا یه اشارهی کردیم تو بحث حجیت قرد و حواده بحث اقرار یک مشکلی خاص خودشون داره. کم جایز که و یکی هم از جاییست که ببیارتبر دو علم ترسیبی از علم اجمالی به خلافش. این یک مشکلی خاص سرش اینه که معلوم نیست اقرار حجیتش به خاطر طریقیت کلام باشه. یعنی به سوبجیت اقرار یک چیز ما خبر واحد و ما بین قاضیه مشکلی داره اقرار خودش یک مشکل داره یعنی به عبارت مخاطب بناشون اینه که در باب اقرار فقط این نبینن که یک واقعی هست و کلامیشون از اثر واقع شخصیت خود هم در نظر میگیرن و لزوما اقرار خودش پیچیدگی داره یک پیچیدگی خاصی داره ولزا اگه ای گفت این کتاب مال زید نه مال امره میگن به زید مین پولش هم برمیه خب بالاخره ما یک نفر شماها هر این مال پیچیده اقراره اقرار تری مثل خبر واحد نیست طریق تریه صرف باشه چون من دارم میگم من مالکم دارم میگم غلط کردید مشکل کار کجاست ولیضا شیخ هم گویید گفت این کتاب مال زید نه مال امره میگن پولش حسابیدم زید پولش رو دادن علی کسی این دوره با هم جمع کرد کتابو و رو خب میتونه هیچش باطله علم که جواب دادن اونجا. اگر این نقطش مال اقرار، اقراری پیچیدگی خاصی در باب فضایت داره. اینطور نیست به این آسانی باشه. یه پیچیدگی داره که لرش تربیت صرف نیست، مثل خبر وارد نیست. بعدم ظاهراً استاد به حمولات تصور کردن مثلاً یا من ادیشر اقرار کردم. الان اقرار میکنه که دیشب اقرار کردم. این که الان اقرار میکنه، به قاعده اقرار قلعه الان تو سه ثابت میشه، پس اقرار دیشب هم ثابت میشه. ما چیزی دوام ابراهیم ابراهیم جا از نداریم اصلا، اصلا این چیزی نداریم. این خیلی مشهوره از کدام یک؟ احتمالا از بیو خدا ربوشن الله رحمت الله چون شوام کردم که رو قوایشو بیشتر درون کتاب نوشته شده که صاحب جوار گفته که باید نیست متوافق باشه با این شیه. خدا ربوشن الله رحمت و بین باید مسلمین باشه. یه روز با خود ایشان نیست اصلی. کتابشان کاملا با کتاب شن شن خود شن خودش کتاب ایشان. بناشون نگاه کنید اصلا روایت نیست این مقاله توازو که چی روایت ظریف از نیست بله مرحوم ظاهره صاحب وسائل در کتابش ارنشده رو کیتوب الف الاستدلال به قول حریصا ایشون از عبارات فوقا گرفته این منشاءشو که خیال بکنید این حدیث و در کتاب سرائر معدد الاجماع حالا هم اقرار بالا این معقد اجماعه و الان تو ذهنم حضور ذهن ندارم البته من خودم احتمال میدم ضم بعض شواهد دیگه داریم که بعضی از مسائلی که در دنیای اسلام صاحبشون در قانون روم قدیم بوده، رومان قدیم بوده. احتمالاً یک متن قانونی از رومی ها بوده اقرار و غلطی بعد به عربی ترجمه شده به این صورت در آمده. به هر حال ما اصلا حدیث ضعیف هم نداریم شده است خدا فکر کرده متواتر. اصلا حدیثی نداریم. نه در بین اهل سنت، نه در بین شیعه اقرار اوغلا علی ان چه بگیم این موضوع دارست در برای اون یکی <تصفيق> این اصلا نیست همچیزی نیست این به اسطلاح تمسا که به یک امر مهمیه پس نکته در اونجا باید به چی برگرده به فهم اقلائی اصلا اونجا تعبد نیست اینجا آخه بحث سر تعبد و فهم نیست. اگر اقرار برای اقرار قبول بکنیم به فهم اقلائیست نه به تعبد کاروی تصور بر برد نم باشن که پس این نره اول این به اقرار بر اقرار به تصور ذهنی ایشانه که ما یک تهبد در باب اقرار داریم به این تصور که این حدیث اقرار و الا حلاح snare نفصل اینجارد از پیغمبر است و داریم. پس به این اقرار الان ثابت میشه اقرار دیشن. این تصور ذهنی مبارک ایشان اینطوره. این تصور ذهنی هم باطله ما اصلا رواتی همونو رو هم نداریم اقرار روه الا حلاح این در وصایل ورشوورد منشأ مشکل برای بافت بعدی شده در وصایالم با... حساب حساب معد فوق العاده انصافا در حدیث 20 سال زحمت میز حساب نشه نویشتر قدیش کوه رفی کوتو بلفر راست هم میگه در کتاب تو فحث اما این حدیث نیست اقرار اولادان حسین جایز کلا حدیث نیست پس در باب اقرار اگر ما اقرار در اقرار را قبول بکنیم به فن اوغلایس این چه در به وجه خبر تعبده این نقد اول ایشان هم ثابت نیست و اما مسئله بغینه بر بغینه هم درش تفصیلی داره، نکاتی خاصی داره که حالا جاش اینجا نیست. در باب بغینه بر در موضوعات خارجی است. ممکن است در باب بغینه بر بغینه قبول بکنن چونجوری طبیعیت صرف داره، نمیخواد عبد الاثر شرعی باشد مثلا دو نفر میگن آقا این کتاب ما می‌ریم میگه خب دو نفر میگن بله ما دیدیم امروز صبح ایشون اینجا بود. اگر بیشون تهمت مثلا قدید زدن که در این سال رفت شکران کشتن اما دیدیم لازم نیست یعنی بحث بینه در موضوعات خارجی است و چون دونفرن شبیه که در آیه مبارکه هست هم ترده اهداه همون که اهداه همون اگر یکی اشتباهات کرد دیگری او رو یاد میاره یه فهم اقلاعی است با تعدد مخبر احتمال خطا کم میشه پس اونجا ناظر ن حریقیت تازه اگر اون قبول بکنیم و اگر هم قبول بکنیم باز اون بیانه متعارف معلوم نیست یعنی قاضی به بیانه بر بیانه معلوم نیستشون رو حکم کنه قاضی با خود بیانه حکم کنه به هر حال اون مسئله چون بیانه دو ما داریم این اشتباه نشیم تا با هم با هم با آثار یه بیانه در امور متعارف یه کسی با این کتاب به که بلانی اینجا نصر نجسه اینجا تاه این بیانیه به طور عمومی در موضوعات خارجی یه بیانیه در احکام قضا داریم البینات علامنه دعی علی علامنه دعاء یک بیان اون آثار خاص خودشو داره بیانیه در باب غذا این که بیانیه بر بیانیه هم قبول میشاله میشه اصل در باب غذاست یعنی دو نفر شاهد نمیدونن که این آقا مثلا کشه دو نفر شهادت میدن که ما از دو تا عادلش میگین این آقا اینا هار کشه آیا بیانه بر بیانه در باب خذا قبول میشه؟ این نما عقضی به نکن ایمان و بیانات شامل اون میگه یعنی چیکار؟ تو چی پس اون یه بحث خاصی است. اما خود اون بحثی نفسه روشن نیست نکات خنی اون بحث بیشتر جنبه سبوته نه مثل باب خبر وارد که تحبوت باشه به جعله پس این دوتا اشکال نقضی ایشون هم وارد نیست انصافن و اصولاً بحث و متاسفانه ایشان و مربون و دیگران از زمان شیخ تا حالا که مطرح شده ریشهی روشکار نشده تصور دقیق نشده بحث و همون صورتی که من اعز کردم ظاهرش اونه اگر اون باشه اشکال به حاله اما اون مبنم فاصله اصولاً شو یک یه این مختلف فاسد شده لوازه باشم فاسده بگه ما فهم نمونم گفت به کسی قرار شد 70 شد تا به ده گفت در این لحظه گفت پشنگه او اول ده گفت 60 تا ده این وقتی یک مطلب حاصل بود یک مطلبی که پی نفسه فاسده نخواهی فاسد لوازمه لوازم وجودیش هم فاسده این طبیعیه دیگه خیلی ما قبل از اشکال اخبار معل واسطه بکنان اول ما این خود مبنا فاسده جعل و خبر که اصلا خود خواهی نهایی مطلب که فی نفسه شد لوازه میشن فاسده فهم نمی کن یکی از لوازمش میشن تردید ولی که احتیاج بونه نداره نه احتیاج به اشکال معتضله نداره این مطلب فی نفسه بدون اشکال اخبار منوسته و این رایه که فرمون استاد رفتن در جوابیان نایمی که متواربه یکیش مبناس برای این که درید حجیت سیره وقت یکیش مدرن شده که دین حجیت روایات و عدل نفس، با به حجیت اندل قغالات تفسیر تشریح. و روی هر دو مبنا اشکال وارد نیست. مثلا روی هر دو با اون یه سوال دیگه هست، یه سوال دیگه. اون یه چیز، یه سوال که داره اون چیز دیگه جواب بده. بعد این دو تا مبنا اشکال داره. صلی الله و علی محمد و آله الطاهر. مقاصد و اصول امریه نموز بشیم، اصل توفیق می‌خوام. حالا ان شاء الله فردا می‌خواست که چاندی کتاب شواله اصول الفقه مشمائل این یک